عزیزان زمن ضمن بررسی هامون به کتاب مزامیر یکی از محبوب ترین کتابهای من در کتاب مقدس رسیدیم به کلاس دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین در جلسه گذشته به مزمور 23 نگاه کردیم خداوند شبان من است و من محتاج به چیزی نخواهم بود در جلسه گذشته ما بررسی کتاب مزامیر رو شروع کردیم یادتونه که گفتیم کتاب مزامیر سرودنامه بزرگ برای قوم خدا بود، بیاید در ادامه بررسی مزامیر با معلممون همراه باشیم. در مقدمه مزامیر دیدیم که مضمور نویس گاهی با خدا در مورد خدا صحبت میکنه و گاهی با خدا در مورد انسان صحبت میکنه. و اکثر اوقات در مورد خدا با مردم صحبت میکنه. میتونیم به این ترتیب بگیم که مضمور نویس گاهی خدا رو میپسته، گاهی دعا میکنه و در برخی زمان ها موعظه میکنه میخوام یاداوری کنم که موضوعات مختلفی هست که در مزامیر میبینید یکی موضوع مرد برکت یافته است اون موضوعی احساسیه که ته اون مزمورنویس حال و هوای روحانی رو ذکر میکنه که شاید شما هم تجربه کرده باشید و راه برون رفت از این مشکل رو به ما نشون میده بعد موضوع پرستش هست که نویس نه تنها پرستش میکنه بلکه من و شما رو نصیحت میکنه که پرستش کنیم و به ما یاد میده که چطور پرستش کنیم. همینطور دیدیم که مزامیر نبوتی هم بودن و مزمور نویس در اونجا یک نبی هست که ظهور اولیه و صانوی مسیح رو پیشگویی میکنه. مزامیر مرد برکت یافته اغلب حاوی پیام هستند مزامیر احساسی غالبا مزامیر دعا هستند و البته همه یه مظامیری که با خدا در مورد خدا صحبت میکنه مزامیر پرستشی هستند. مزمور 23 یکی از این های مرد برکت یافته در مزامیر است. مزمور 23 از زبان یک گوسفند صحبت میکنه و شما میتونید در این مزمور گوسفند کوچکی رو تجسم کنید که از پشت فنس ها به دیگر گوسفندان نحیف و رنجور نگاه میکنه. او با اون گوسفندان بیچاره قافل در مورد شبانی صحبت میکنه که مراقب او هست. گوسفندی که در مزمور 23 صحبت میکنه اونا میگه که خداوند شبانه منه در مزامیر مرد برکت یافته این مرد نه تنها در مورد برکت یافتگی و برکت خودش صحبت میکنه بلکه همیشه در اونجا کلید اون برکات رو هم ارائه میکنه برکات مرد برکت یافته هیچ وقت تصادفی نیستند اونها هرگز شانسی نیستند بلکه اونها زیافت عواقب هستند در مزبور 23 کلید تمام برکات مرد برکت یافته مرتهای سبز آبهای آرام و کاسه لبریز رابطه او با خدا هست که با این کلمات توصیف شده خداوند شبان من است در جمله آغازین داوود به ما میگه که خدا شخص هست و او رابطه ای کاملا شخصی با خدای خودش داره در عهد قدیم با این کلمات زیبا به ما گفته شده که خداوند یک شخص هست خداوند شبان من است در عهد جدید وقتی عیسی به ما میگه که خدا رو پدر خطاب کنیم به این وسیله به ما میگه که خدای شخصه همینطور در عهد جدید به ما گفته شده که وقتی ما پر از روح میشیم یکی از نشانه های اون پری این هست که ما فریاد میزنیم ابا پدر در زبان اصلی کتاب مقدس کلمه این که برای پدر استفاده شده با هست که به معنی بابای من هست ما میتونیم با خدا رابطه نزدیکی داشته باشیم و اونقدر صمیمی باشیم که بتونیم خدا رو پدر من خطاب کنیم این استعاره شبان و پدر به ما میگن که خدا شخص هست و مایل که با ما رابطه ای شخصی داشته باشه. اگه شما اظهار کنید که خداوند شبان من است میتونید به روشی متفاوت و با تأکید بر معنی هر کلمه در جمله با خدا گفتگو کنید. مثلا اگر میگید خداوند شبان من است اون درهای زیادی از مشاهده حقایق و منظورهای خدا رو برای شما باز میکنه. مثلا وقتی او میگه منو کنار آب‌های راحت راهبری می‌کنه این فقط به معنی سلامتی و آرامش خاطر نیست گوسفند نمی‌تونه آب بخوره مگر اینکه آب کاملا صاف باشه چون وقتی گوسفند آب می‌خوره اگر آب صاف نباشه وارد بینیش میشه و او رو ناراحت می‌کنه پس واقعیت این که چرا شبان گوسفندها رو کنار آب‌های آرام هدایت می‌کنه به این معنیه که خداوند ما رو به جاهایی هدایت می‌کنه که مناسب ما باشه با حال. اینو تجربه کردید که خداوند شما را با یک بیماری و یا با چیزی که فکر کردید فاجعه هست خوابونده و بعد فهمیدید او شما را به این دلیل خوابونده که میخواسته شما را نزد آبهای راحت هدایت کنه آبهایی که برای شما مناسب باشه. سالها قبل شبان عزیز رو میشناختم که به خاطر بیماریش از کلیسای بزرگی داد طبعا او فکر میکرد تمام تجربهش یک فاجعه فاجه هست. او میخواست بعضی از هایی رو که از برخی از کلیساهای خوب دریافت کرده بود بررسی کنه. اما قبل از هر چیزی او باید از علت بیماریش مطمئن میشد. طی آزمایشات بالینی مشخص شد که باید به مدت ده هفته با اشعه ایکس مداوا بشه که این سبب سردرد جدی در او شد. او نمی‌تونه سرش را رو از روی بالش برداره و محض اینکه سرش را رو از روی بالش برمی‌داشت فکر می‌کرد که دماغش خونریزی خواهد کرد. و مجبور میشد بلا فاصله خواب برگرده. در طی اون ده هفته نتونست از اون ده کلیسایی که خیلی مایل بود دیدن بکنه در مدتی که او درد میکشید و نمیتونست جایی بره عده ای از یک شهر کوچک به دیدن او اومدند و از او پرسیدند که آیا مایل هست در تأسیس کلیسای جدید با اونها همکاری بکنه از او وزنش برای شروع یک کلیسای جدید در اون شهر دعوت شد و اونها با اشتیاق اون دعوت رو پذیرفتند حدود یک سال بعد بنیانگزاران اون کلیسای کوچک به او پیشنهاد کردند که برای ادامه معالجات و آزمایشات به یک کلینیک خصوصی بره. پزشکان محلی به او گفته بودند که به خاطر فشار کاری او خسته شده. بعد از سه هفته و نیم آزمایشات در کلینیک تشخیص اونها این بود که بافتهای او دو برابر سفت شدن. برخی از دکترها او رو به مطبشون دعوت کردند تا نتیجه تحقیقشون رو به برسونند. دکترها میخواستند به او چیزی در مورد ام بگن. به او گفتند که میخواهیم با تو در مورد سرف شدن عضلاتت صحبت کنیم. علاوه همه این چیزها به او گفتند که تو دیگه نمیتونی فشار زیادی رو تحمل کنی. باید یاد بگیری که کمتر کار کنی اما بهتر کار کنی. به او گفتند که باید در کلیسای کوچک در شهری کوچک کار بکنید. دکترها کلیسایی رو براش ترسیم کردند که او داشت اونجا کار میکرد. بعد از اینکه توضیح دادن چیکار باید بکنه، او گفت دکتر من قبلا در چنین کلیسایی قرار گرفتم. خدا او رو خوابونده و بعد او رو نزد آبهای راحت هدایت کرده بود. خداوند او را نزد آبهایی هدایت کرد که برای او مناسب بود. آیا تا به حال شما هم چنین تجربه‌ای داشتید؟ معنی آبهای راحت اینه. بذارید بگم شبان چطور جان گوسفند رو تازه می‌کنه. گوسفندان بدون شبان کاملا درمانده و ناامید هستند. گاهی اونها دمر میافتند وقتی یک میش بچه دار هست و به پشتش میافته، هر چهار دستش رو به هوا میمونه و سعی میکنه برگرده ولی نمیتونه اونجا فقط دراز میکشه و فریاد میزنه و همه گوسفندان اطراف او فریاد میزنند و بعبع می میکنند اما هیچ کدام نمیتونند کاری برای او انجام بدن. اگر شبان مشکل میش رو تشخیص نده حدود سه یا چهار ساعت بعد میش به حال مرگ میفته اگر شبان نزد گلش نباشه بین شش تا 8 ساعت میش قطعاً خواهد مرد وقتی شبان میشی رو که به پشت افتاده بلند میکنه این تازه کردن اون هست آیا تا حالا در وضعی بودید که احساس کردید به پشت افتادید و نمیتونید بلند بشید آیا تا حالا شده که صبح چشمتون رو باز کنید و فکر کنید که نمیتونید از جا بلند بشید و تنها کاری که میتونید بکنید اینه که ناله کنید و بگید با با وقتی در چنین وضعی بیدار میشید باید دعا کنید خداوندا تو باید بیایی و مرا تازه کنی چون که اگر نیایی و مرا بلند نکنی دیگه امیدی توی این دنیا ندارم تازه کردن تقریبا معنی اصلیش نجات هست کلمه نجات همون کلمه رهایی یا رستگاری هست شما باید معنی کلمه نجات رو وقتی که دعا میکنید کنید خدایا تو باید بیایی و منو نجات بدی بدونید و بگید خدایا اگر تو منو نجات ندی نمیتونم نجات پیدا کنم تو باید منو نجات بدی چون من خودم نمیتونم خودم رو نجات بدم ماهیت اون دعا در تجسم این گوسفند دمر افتاده به تصویر کشیده شده این مهمه که بدونیم واقعا مزمور 23 چی میگه در واکنش به مزمور 23 شما باید از خودتون این سوال رو بپرسید آیا من مرد برکتی یافته ای که در این مزمور توصیف شده هستم آیا یک نقطه عطف روحانی دارید؟ آیا به یاد میارید که خداوند کی وارد زندگی شما شده و شما رو خوابونده؟ یادتون میاد که خداوند کی شبان شما شد و شما به این واقعیت اعتراف کردید که گوسفند او هستید؟ آیا زمانهایی بوده که نیاز داشتید تازه بشید؟ اینجوری میتونید مزمور 23 رو به روش خودتون بخونید و خدا رو بپرستید. سالها پیش شنیدم که کسی میگفت مزمور 23 رو حفظ کنید و حداقل روزی سه بار اون رو از حفظ بخونید و این کار رو تا یک ماه ادامه بدید و زندگیتون عوض خواهد شد. من سه متن کتاب مقدسی دارم که همه چیز منه، یکی از اونها مزمور 23 هست، دیگری دعای خداوند هست و اون یکی باب چهار روم فیلیپیان هست. من با این سه متن کتاب مقدس زندگی میکنم. من اونا رو حفظ کردم و شبها وقتی نمیتونم بخوابم به به جای اینکه در ذهنم بشمارم خودم گوسفن میشم و به روش خودم از مزمور 23 خدا رو میپرستم چون با فیض خدا میدونم که خدا شبان منه و تمام مزامیر رو به این ترتیب دعا میکنم پدر متشکرم که شبان من شدی شکرت میکنم برای روزی که مرو خوابوندی شکرت میکنم وقتی منو خابوندی مرطها سبز بودند شکرت میکنم که منو به آبهای آرام به جاهایی که برای من مناسب بودند هدایت کردی شکرت می کنم که جان منو با نشان دادن راه های پارسایی که بتونم در اونها گام بردارم تازه کردی. شکرت می کنم که اصهای تو تسلی منه و به این وسیله منو حفاظت کردی. شکرت می کنم به خاطر چوب دستی تو که توسط اون منو هدایت کردی و برای من همه چیز فراهم کردی. شکرت می کنم برای اطمینانی که در بهبه همه مشکلاتم دارم که تو برای من صفری خواهی گسترد و همه چیز رو برای من فراهم خواهی کرد. شکرت می‌کنم به خاطر این دیدی که این مزمور به من میده. نه تنها برای امروز، بلکه برای فردا و تمامی روزهای زندگیم تا به ابد و به حیات جاودانی. شکرت می‌کنم که این اعتقاد رو در قلب من قرار دادی که چون تو شبان من هستی، تمامی روزهای زندگیم پر از نیکویی خواهد بود. شکرت می‌کنم که با نیکویی و رحمتت در تمامی روزهای عمرم تا به ابد دنبال من هستی شکرت می کنم برای امید قطعی که به خاطر رحمت بیدریق تو دارم که همواره در بعد ابدی با تو خواهم زیست من شما رو تشویق می کنم که از روی مزمور 23 خدا رو بپرستید و از خداوند برای برکات زیبایی که در این متن استعاری زیبا از زبان گوسفند در این مزمور شبان بیان شده تشکر کنید اینجا یک کاربرد عملی هست اگر کتاب مقدس ندارید یکی پیدا کنید و مزامور 23 رو باز کنید و اون رو حفظ کنید. بعد نه تنها اون کلمات رو در فکرتون بگید بلکه با تمام قلبتون بگید خداوند شبان من است. یک تعریف واقعی مرد برکت یافته دیگر در مزامور یک است. وقتی که شروع می‌کنید به خوندن مزامیر مزامور اول شما را برای مزامیر مرد برکت یافته در این کتاب سرود آسمانی آماده می‌کنه. خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی کند و به راه گناهکاران نمیرود و با مسخره کنندگان هم نشین نمی شود بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است و شب و روز به دستورات او می اندیشد. او مانند درختی است که در کنار نهر آب کاشته شده باشد. میوه خود را در موسمش میدهد و برکهایش پش نمی گردد و در همه کارهای خود موفق است. اما شریران چنین نیستند بلکه آنان مانند کاهی هستند که باد آنها را پراکنده میسازد بنابراین شریران در روز داوری محکوم خواهند گردید و در جمع ایمانداران نخواهند ایستاد خداوند راهنما و حافظ این کوکاران است اما عاقبت بدکاران هلاکت و نابودی است همانطور که قبلا اشاره کردم موضوعات متعددی در کتاب مزامیر هست مزمور یک دو مرد رو به ما نشون میده شما میتونید مزمور یک رو دو مرد در صحنه بخونید کدام یک شما هستید مزمور یک اول مرد برکتی افته رو به تصویر میکشه بعد بر روی مرد برکتی افته متمرکز میشه و یک مرد خدا خداشناس رو هم به تصویر میکشه ما وقتی به عهد جدید میرسیم میبینیم که عیسی هم همین کار رو کرده عیسی راه باریکی رو شرح میده که به جایی منتهی میشه و راه فراخی رو نشون میده که به هیچ جا منتهی نمیشه مردی که خانهاش رو بر روی صخره بنا میکنه و مردی که خانهاش رو بر روی شن بنا میکنه نبی حقیقی و نبی کاذب عیسی مرتبا دو مرد رو در صحنه به تصویر میکشه و میپرسه شما کدوم یکی هستید مرد برکت یافته نتیجه اعتقادات عمیق او و تصمیماتش است مزمور یک از یک شعر ابری گرفته شده که حقیقتی مثبت رو به روشی منفی اظهار میکنه با گفتن اینکه او چه چیزی نیست مزمور به ما شرح میده که مرد برکت یافته چی هست؟ مثلا مرد برکت یافته اول به این دلیل برکت یافته که در محول تمسخورگران ننشسته. این بیان برعکس مرد برکت یافته هست که در محول ایمانداران مینشینه مرد برکت یافته مرد ایمانداری هست این اولین کلید برکات او هست مرد برکت به کلام خدا ایمان داره در واقع نه تنها به کلام خدا ایمان داره، بلکه کلام خدا رو دوست داره. او شبان روز در کلام خدا تحمل میکنه کنه. یکی از توضیحات دلیل برکت او مربوط به کلام خدا هست. این حقیقت هم به روشی برعکس بیان شده. خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نمیزند این روش برعکس اعلام این هست که او در مشورت خدا گام برمی داره و مشورتش را از کلام خدا می گیره. پس او مرد برکت یافته ای هست. و این تصادفی و شانسی نیست مرد برکت یافته به خاطر اینکه مرد ایمانداری هست و به کلام خدا ایمان داره برکت یافته. مرد برکت یافته به این دلیل که کلام خدا رو دوست داره و در کلام خدا تعمل می میکنه و از کلام خدا اطاعت میکنه برکت یافته. داوود در این مضمور آشکار از خودش صحبت میکنه همونطور که در کتابهای اول و دوم سموئیل دیدیم داود دومین پادشاه اسرائیل بود. در کتاب تصنیه ما این قانون رو ملاحظه کردیم که توسط موسی نوشته شده. کتاب مقدس میگه وقتی به سرزمین موعود وارد شدید و برای خود پادشاهی انتخاب کردید و او به عنوان پادشاه بر تخت نشست باید این کتاب رو در دسترس خودش نگه داره و در تمام طول عمرش اون رو بخونه تا یاد بگیره که چگونه خداوند رو احترام بذاره و از همه فرمان او با دقت پیروی کنه این کار باعث میشه که فکر نکنه از مردم اسرائیل برتره و از فرامین خداوند منحرف نمیشه پس برای سالیان زیادی پادشاهی میکنه و فرزندان او برای نسل بر اسرائیل حکومت خواهند کرد موسی این اصل رو برای پادشاهان اسرائیل قرار داد از اونجایی که داوود دومین پادشاه اسرائیل بود باید شخصا به با اون اصل عمل میکرد او باید نسخه ای از کلام خدا را رو, رو نویسی می‌کرد و باید نسخه شخصیش رو همیشه به همراه داشت. بر اساس مزمور 1 میتونیم فرض کنیم که داوود وقتی این دستورالعمل را اجرا می‌کرد به کلام خدا علاقمند شد و شبان روز بر کلام خدا تأمل کرد و به اون باور کرد و از اون اطاعت نمود. به نظر می رسه مرد برکتی یافته ای که توسط داوود به تصویر کشیده شده نمایی از زندگی خود داوود هست. داوود به ما میگه که محبتش به کلام خدا او رو به مردی برکت یافته مبدل کرد. بعد از شرح اعتقادات و تصمیماتی که او رو به مرد برکت یافته تبدیل کرد، داوود شروع میکنه به شمردن برکات مرد برکت یافته. اولین برکت اصطادگی هست. مرد برکت یافته مانند درختی است که کنار نهر آب کاشته شده و زمین مرطوبه. و ریشه های درخت بسیار عمیق شدند. آیا تا حالا با چنین درختی برخورد کردید؟ سعی کردید اونو از جاش تکون بدید؟ اگه این کارو بکنید میفهمید که اون مطلقا از جای خودش تکون نمیخوره به درخت بزرگی با ریشه های در زیر زمین فکر کنید که در سمت مختلف دهها متر ریشه هاش پراکنده شدن و خواهید فهمید چرا یک درخت مثال خوبی برای استقامت هست ایسا استقامت رو با این تمثیل شرط داده و فرموده کسی که به کلام من گوش میکنه و از کلام من اطاعت میکنه مانند کسیه که خانهاش رو بر روی صخره ای محکم بنا کرده. و وقتی که طوفان بیاد اون خانه ویران نخواهد شد چون بر روی صخره ای محکم بنا شده. این استقامته. برکت بعدی مرد برکتی یافته میتونه حاصل خیزی خونده بشه. مرد برکت یافته پرثمر هست. من روشی که داود برای مرد برکت یافت از تمثیل پرسمر بودن شهر داده خیلی دوست دارم. داوود به ما میگه او میوهش رو در تمامی فصول زندگیش به بار میاره. بدیم منی که اون سمرات خدا رو در زمان خدا به بار میاره. این خیلی مهمه که اعتقاد داشته باشیم چیزهایی که در زندگی ما دیده میشه نتیجه رابطه ما با خدا هست. عیسی به شاگردانش در بالاخانه گفت من و پدر یکی هستیم. و هر کلمه ای که من می گویم و هر کاری که می از اتحادی که از پدر دارم سرچشمه می گیره. بعد عیسی گفت من شما رو ترک خواهم کرد اما روح القدس رو خواهم فرستاد و وقتی او آمد باید با او یکی بشید همونطور که من و پدر یکی هستیم. اگر با او یکی بشید او به شما خواهد گفت که چه بگویید و به شما این قابلیت رو خواهد داد که هر کاری رو انجام بدید. کلام خدا توسط شما در روی زمین منتشر خواهد شد و کار خدا بر روی زمین توسط شما انجام خواهد شد چون شما با او در روح یکی هستید. این چیزیه که داوود در مزمور یک شهر داده. چون مرد برکت یافته به کلام خدا ایمان داره کلام خدا رو دوست داره و شب و روز بر کلام خدا تعمل می کنه و از کلام خدا اطاعت می کنه به خاطر این میوه خدا رو در زمان خدا به بار میاره. چون که او از مقدس بودن هم فراتر میره و به جایی میرسه که شخصا خدا رو میشناسه و این او و خدا رو یکی میکنه. درست همونطور که عیسی و پدر یکی بودن. این به مرد برکت یافته امکان میده که میوه خدا رو در زمان خدا به بار بیاره. هرگز فراموش نکنید که خدا یک زمانبندی داره. خدا هرگز عجله نمی نمیکنه چون خدا هیچ محدودیت زمانی نداره و مثل منو شما در بند زمان نیست پس یادتون باشه که باردهی یکی از برکات مرد برکت یافته است برکت بعدی مرد برکت یافته کامیابی هست. ما در کتاب مقدس میخونیم که او در همه کارهایش کامیاب خواهد شد این برای شما امکان داره که یک حساب بانکی کامیابی داشته باشید که در کامیابی های خودتون از اون برداشت کنید وقتی داوود میگه کامیابی یکی از برکات مرد برکت یافته است او از کامیابی در سطح مادی صحبت نمیکنه. شاید حتی اشاره داوود به کامیابی در زندگی فعلی هم نبوده. کامیابی که داوود نوشته شاید اشاره به کامیابی روحانی در بعد ابدی داره. مرد برکت یافته در انسان درونی خودش در این زندگی و در ابدیت کامیاب میشه. یادتون باشه که این کتاب شعر بیشتر بر روی انسان درونی تمرکز داره نه بر انسان بیرونی. برکت دیگر مرد برکت یافته طول عمر هست. روزی از یک پیرمرد پرسیدم چطور این همه عمر کردی؟ او جواب داد من فقط نفس میکشم و نفسم رو پس میدم. او 91 سال نفس کشیده بود و نفسش رو پس داده بود. البته او دلایل دیگه هم برای طول عمرش داشت. او مرد خداشناسی بود. کتاب مقدس به ما میگه که مرد برکت یافته عمر درازی داره. در این کلام گفته شده که طول عمر یکی از برکات او هست. برگهای اون هرگز پژمرده نخواهد شد. این استعاره فقط به این معنی نیست که مرد برکت یافته تا سنین پیری زندگی میکنه. شما میتونید 55 و ساله باشید و 100 ساله به نظر برسید. یا میتونید 90 ساله باشید و به نظر 55 و ساله بیایید. تفاوتش به مقدار زیادی مربوط به دیدگاه شما از زندگی و آنچه که در انسان درونی شما میگذره بستگی داره این حقیقتیه که با این تشبیه بیان شده برگهای او هرگز پژمرده نخواهد شد معنیش اینه که مرد برکت یافته پژمرده نخواهد شد و پیرمردی فرطوت نخواهد شد و بالاخره یکی از بزرگترین برکات مرد برکت یافته به صورت وارونه نشون داده شده ما در مزمور میخونیم که او در راه گناهکاران نخواهد ایستاد آیا ملاحظه کردید که کتاب مقدس مکررن میگه راه خطاکاران راه سختی هست؟ دنیا سعی میکنه شما را وادار کنه که به دروغ بزرگی باور کنید. دنیا با فشارهای تبلیغاتی خود به شما میگه که انسان خطاکار برای آفته واقعی هست که شاد هست و راه خطاکاران جایی هست که هیجان و شادی در اون هست. بسیاری از جوانان در دام این فریب میفتن. اونها به ناچار مجبور میشند که وارد دنیا بشن تا بفهمند راه شریران راه سختی هست. وقتی که بر اساس کلام خدا زندگی نکنید، زندگیتون بسیار سخت خواهد شد. یکی از بزرگترین برکات این مرد برکت یافته اینه که او در راه های گناهکاران نییسته. آیا تا کنون کنار یک برد الکلی که در حال مرگ بوده ایستادید که از خماری هزیان میگفته؟ آیا تا کنون کنار بستر کسی که از ایدز در حال مرگ بوده نشستید؟ آیا مشاهده کردید که زیافت عواقب اونها چقدر میتونه وحشتناک باشه؟ آیا اون موقع ایستادید و از خدا تشکر کردید که در راه گناهکاران در این زندگی نیستادید؟ مرد برکتی یافته در این زندگی و زندگی آینده امنیت داره چون در راه های خدا قدم بر و نصیحت های خدا رو وقتی که در کلام خدا میبینه دنبال میکنه. چون که در راه گناهکاران نمییسته. این بسیار مهمه که بفهمیم امنیت مرد برکت یافته تا ابدیت هم ادامه پیدا میکنه ما در این مزمور میخونیم که گناهکاران نمیتونن در جمع پارسایان بیستن این جمع پارسایان در بعد ابدی هست باز هم یک حقیقتی داریم که به طریقی وارونه بیان شده داوود از جمله منفی در مورد مرد شرید استفاده کرده و بر این حقیقت تمرکز کرده که مرد برکت یافته میتونه در جمع پارسایان در بعد ابدی بیسته او به ما میگه که مرد شریر نمیتونه داوری رو تحمل کنه اما مرد پارسا میتونه در مقابل داوری بیسته درست مثل جواهر فروشان که از زمینه مخمل سیاه برای نشون دادن درخشش الماس استفاده میکنند داوود هم از زمینه مخمل سیاه یعنی مرد شریر استفاده میکنه تا برکت مرد برکت یافته رو نشون بده داوود مرد خداشناس شناس را اینطور تعریف میکنه. مرد شرید مثل او نیست. شما میتونید در سرتاسر سر این متن جمله های برعکس از مرد برکت یافته رو ببینید. مرد شرید این گونه نیست. مرد شرید مثل مرد برکت یافته ایمان نداره. مرد شرید به کلام خدا ایمان نداره. کلام خدا رو دوست نداره شب و روز بر کلام خدا تعمل نمی نمیکنه. از کلام خدا اطاعت نمیکنه به استقامت نداره مثمر سمر نیست. کامیابی نداره طول عمر و امنیت نداره مرد شرید مانند مرد برکت یافته با خداشناس ابدیت رو تجربه نخواهد کرد وقتی ما این مرد شریج رو با مرد برکت یافته مقایسه می کنیم مرد برکت یافته رو بهتر درک میکنیم. کنیم. چرا او برکت یافته جوابهای روشنی برای اون سوال هست برکت های مرد برکت یافته چی هستند در این مزمر برکات او به وضوح شمرده شده و شما میتونید بفهمید که برکات او پیامد تصمیمات او هستند همونطور که قبلا گفتم این مزمور اول یک مزمور صریح است که به ما الگویی از مرد برکت یافته در مزامیر میده بسیاری از مزامیر مزامیر مرد برکت یافته ای هست و اکثر اونها از الگوی مزمور یک تبعیت میکنند مزمور 23 از تشبیه زیبای رابطه گوسوند شبانی استفاده میکنه در این حال مزمور 23 به ما میگه که هر کسی برکت یافته نیست فقط کسانی برکت یافته هستند که بتونند بگن خداوند شبان منه. وقتی انسانی با فیض خدا برکت پیدا میکنه همیشه در جایگاهی نیست که خداوند او رو ملزم کرده که اونجا باشه چون او همیشه به این حقیقت اقرار و اعتراف نمیکنه که گوسفند هست. همونطور که دیدیم گاهی او بلند میشه و کارها رو به دست میگیره و سعی میکنه که خودش شبان خودش بشه و بعد خدا شبان اعظم از همه مسئولیت‌های شبانی او برکنار میشه و برای او چیزی موهیا نمیکنه و این فاجعه به بار میاره شما دیدید که های مرد برکتی یافته همه مشروط هستند وقتی که به مزمور مرد برکتی یافته رسید خواه مزمور یک باشه و یا مزمور 23 یا برخی از مزامیر دیگه که بررسی خواهیم کرد بزرگترین چالش اینه دو مرد در صحنه هستند. شما کدام یک هستید؟ با فیض خدا آیا شما مرد برکت یافته هستید؟ آیا در جایگاه ایمانداران نشستید؟ آیا به کلام خدا ایمان دارید؟ کلام خدا رو دوست دارید و شب و روز بر کلام خدا تحمل می کنید؟ آیا از کلام خدا اطاعت می کنید؟ آیا نصیحتهای خدا رو که در کلام خدا می بینید به کار می بندید؟ بر اساس مزمور یک، اینها کلیده برکات مرد برکت یافته هستند اگر شما کلام خدا را باور نکنید دوست نداشته باشید و در اون تأمل نکنید و از اون اطاعت نکنید شایسته برکات نخواهید شد و نمیتونید انتظار داشته باشید که برکات مرد برکتی یافته رو تجربه کنید حقیقت ترسناک در مورد مرد شریر در دو کلمه آخر مزمور یک بیان شده اونجایی که کلام گفته مرد شریر نابود خواهد شد دو مرد در روی صحنه هستند آیا شما مرد برکتیافته هستید و یا اونی هستید که برکتیافته نیست؟ آیا کسی هستید که با این کلام ترسناک درباره مرد برکت نیافته توصیف شدید که میگه طریق شریران به نابودی خواهد انجامید؟ در مزمور یک تأمل کنید و از خودتون بپرسید آیا من مرد برکتیافته ای هستم؟ اگر نیستید میتونید یک مرد یا زن برکتیافته بشید. از تصمیمتون برنگردید. خدا میخواد شما رو برکت بده، کامیاب کنه، به شما استقامت بده، شما رو مصمر سمر کنه و به شما زندگی با کامیابی بده. او را باور کنید، کلام او را باور کنید، به کلام او عشق بورزید و در کلامش تعمل کنید و از کلامش اطاعت کنید. دوستان مزشکر که با کلام خدا به چالش میافتید چیزهای زیادی هست که ما میخوایم یاد بگیریم. به عنوان پیروان او، او بهترین هاشو برای ما آرزو داره و میخواد که ما بهترین هاشو تجربه کنیم. ما باید در روح و راستی او رو بپذیریم. به کلامش ایمان داشته باشیم، کلامش رو دوست داشته باشیم و از کلامش اطاعت کنیم. متشکریم که دانش متحدی متعهدی هستید. امیدواریم که با هر درسی در ایمانتون رشد کنید و بهترین های او رو در زندگی تجربه کنید. تا برنامه بعدی. خدا به شما برکت بده